بخش اول هوادث قبل از ماجرای آشورا ولادت امام حسین علیه السلام و مراسم ولادت او امام حسین علیه السلام در شب پنجم ماه شعبان سال چهارم هجرت و به قولی در روز سوم شعبان سال سوم هجرت چشم به جهان میگشود و به قول دیگر آن حضرت در اواخر ماه ربیع الاول سال سوم متولد شد و اقوال دیگری نیز گفته شده است تعبیر خواب ام الفضل, ام الفضل همسر عباس اموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گوید قبل از ولادت امام حسین علیه السلام در عالم خواب دیدم پاره‌ای از گوشت بدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از بدن او جدا گردید و بر روی دامان من نهاده شد به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و خوابم را گفتم و تعبیر آن را خواستم فرمود ای ام الفضل خواب نیکی دیدی اگر از خوابهای راست باشد به زودی از فاطمه علیه سلام پسری متولد می شود. آن را به تو می‌دهم تا شیرش بدهی ام الفضل همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر کرده بود همانطور شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از تولد حسین علیه السلام او را به من داد و در آغوش گرفتم گریه شدید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ام میگوید روزی به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدم حسین علیه السلام در آغوشم بود او را بر دامن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهادم در این میان که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را می بوسید او ادرار کرد قطره ای از ادرارش به لباس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید من از روی ناراحتی حسین علیه السلام را وشگون گرفتم گریه کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال خشم به من فرمود ای ام الفضل آرام باش این لباس من قابل شستشوست تو پسرم را آزردی برخواستم و رفتم آب آوردم تا لباس پیامبر صلی الله علیه و آلیه و سلم را بشویم وقتی به محضرش رسیدم دیدم گریه می‌کند گفتم ای رسول خدا چرا گریه می‌کنی فرمود جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد که امتم این پسرم را می‌کشند خداوند شفاعت مرا در روز قیامت به آنها نائل نکند دوازده فرشته گوناگون در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راویان حدیث روایت کنند پس از گذشتن یک سال تمام از تولد امام حسین علیه السلام ناگاه دوازده فرشته به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند آنها چهره های گوناگون داشتند یکی به صورت شیر بود دیگری به صورت گاو، سومی به صورت اژدها و چهارمی به صورت انسان و هشت فرشته دیگر به صورت گوناگون با چهره قرمز و چشم های گریان پروبالشان را گشوده بودند و می گفتند ای محمد بزودی به زودی به پسرت حسین علیه السلام فرزند فاطمه علیه سلام همان نازل می شود که از ناهی قابیل به هابیل وارد شد و پاداشی که به حابیل داده شد به حسین علیه السلام نیز داده میشود و عذابی که خداوند به قابیل رسانید به قاتلان امام حسین علیه السلام نیز میرساند تسلیت فرشتگان مقرب هنگام تولد امام حسین علیه السلام در همه آسمانها فرشته مقربی باقی نماند مگر اینکه به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و سلام عرض کردند و به آن حضرت در مورد مصیبت حسین علیه السلام تسلیت گفتند و آن حضرت را به پاداش عظیمی که عوض شهادت حسین علیه السلام به او داده خواهد شد با خبر کردند و تربت قبر امام حسین علیه السلام را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشان دادند. پیام بر صلی الله علیه و آله و سلم در این هنگام چنین نفرین کرد. خدایا خار گردان کسی را که حسین علیه السلام را خار کند و قاتلش را بکش و او را به مقصودش نرسان. سفر غم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دو خطبه کوتاه او هنگامی که امام حسین علیه السلام دو ساله شد برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسافرتی پیش آمد ناگهان در یکی از رهگذرها ایستاد و در حالی که اشک از چشمانش سرازیر میشد گفت انا لله و انا اليه راجعون یکی از حاضران از علت ناراحتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید آن حضرت فرمود این جبرئیل است که از زمینی که در کنار فرات به نام کربلاست به من خبر می‌دهد که فرزندم حسین علیه السلام در آن کشته می‌گردد شخصی پرسید ای رسول خدا چه کسی آن حضرت را می‌کشد فرمود مردی که نامش یزید است گویی به قتلگاه و مرقد حسین می‌نگرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سفر خود ادامه داد و پس از مدتی غمگین بازگشت مردم در مسجد اجتماع کردند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز منبر رفت در حالی که حسن و حسین علیهما السلام در پیش رویش بودند خطبه خواند پس از خطبه دست راستش را بر سر حسن علیه السلام و دست چپش را بر سر حسین علیه السلام نهاد سپس سرش را به سوی آسمان بلند کرد و عرض کرد خدایا محمد بنده و رسول توست و این دو پاکترین خاندان من و برترین افراد خانواده و شجره من هستند این دو را بعد از خود در میان امتم به یادگار میگذارم. جبرئیل به من خبر داد که این پسرم حسین علیه السلام کشته و واگذاشته می شود خدایا کشته شدن در راه خدا را برای او مبارک گردان و او را از سادات و سروران شهیدان قرار بده خدایا به قاتل و خار کننده او برکت نده همه حاضران با صدای بلند زار زار گریستند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آنها فرمود آیا گریه میکنید ولی او را یاری نمی کنید سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که رنگش برافروخته و چهرش سرخ شده بود به فراز منبر بازگشت و در حالی که سرش اشک از چشمانش سرازیر بود خطبه کوتاه دیگری خواند و فرمود ای مردم من در میان شما دو یادگار گرانقدر میگذارم که عبارتند از کتاب خدا و اطرتم یعنی اهل بیتم و آنان که اساس سرشتشان از من است آنان که وجودشان با آب و گل زندگی من آمیخته شده و میوه من هستند و این دو قرآن و اطرت از هم دیگر جدا نگردند تا در کنار حوز کوسر قیامت بر من وارد گردند من در انتظار دیدارشان به سر برم و من از شما جز آن را که پروردگارم خواسته و به آن امر فرموده نمیخواهم و آن مودت و دوستی نزدیکان و خیشان من است خوب متوجه باشید بگونه ای با آنها رفتار کنید که مبادا فردای قیامت در کنار حوز کوسر با وضعی با من ملاقات کنید که با آنها دشمنی کرده باشید و آنها را کشته باشید دو پرچم سیاه و پلید و یک پرچم نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دنبال گفتار قبل فرمود آگاه باشید در روز قیامت سه پرچم با هوادارانش از همین امت بر من وارد می‌گردند یک یکی از آن پرچم‌ها سیاه و تاریک است که فرشتگان از آن وحشت کنند هواداران آن پرچم در روبروی من ایستند به آنها می‌گویم شما کیستید آنها که مرا فراموش کرده اند می‌گویند ما یک تا پرست از عرب هستیم به آنها میگویم من پیامبر عرب و عجم هستم آنها گویند ای احمد ما از امت تو هستیم به آنها میگویم شما پس از من با اهل بیت و اطرتم و کتاب پروردگارم چگونه رفتار کردید آنها میگویند اما قرآن را نمودیم و در مورد اطرات تو هر و ولع داشتیم که آنان را از صفحه روزگار براندازیم من از آنها روی میگردانم و آنها با شدت تشنگی و جگر سوخته و روی سیاه از من دور میشوند دو سپس پرچم دیگری با هوادارانش بر من وارد میشوند که سیاه تر و تاریک تر از پرچم قبل است. حواداران آن پرچم میگویم شما بعد از من با دو یادگار گرانقدرم یادگار بزرگ و کوچک قرآن و اطرتم چگونه رفتار کردید آنها میگویند اما در مورد یادگار اکبر قرآن با آن مخالفت کردیم در مورد یادگار اصغر اطرت آنها را خار نمودیم و به طور کامل پاره پارش نمودیم به آنها گویم از من دور گردید آنها با شدت تشنگی و با جگر سوخته و روی سیاه از من دور گردند سه سپس پرچم دیگری با هوادارانش بر من وارد شوند که هم پرچم و هم هوادارانش نورانی و درخشان هستند به آنها گویم شما کیستید آنها در پاسخ گویند ما یک تا پرست و اهل تقوا و از امت محمد و باقی مانده حق پرستان هستیم کتاب خدا را دریافتیم حلالش را حلال و حرامش را حرام شمردیم و خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دوست داشتیم و از آنان با همه امکاناتی که برای یاری خود داشتیم یاری نمودیم و همراه آنها با دشمنانشان جنگیدیم به آنها گویم مجد باد به شما من محمد پیامبر شما هستم شما در دنیا همان گونه بودید که گفتید آنگاه با آب کوسر آنها را سیراب میکنم آنها در حالی که سیراب و شادمان هستند از نزد من بروند سپس وارد بهشت شوند و در آن همیشه خواهند ماند